سال کرم جادو سالهای سال قبل از روز و روزگار ما شهری بود در کنار خلیج فارس به نام کجارد مردم این شهر بیچیز و فقیر بودند و برای به دست آوردن امرار معاششون از صبح تا شب کار میکردن و به هر کار پرزحمتی هم تن میدادند. دختران این شهر کارشون پمبه بود و از این راه چرخ زندگی خانوادهشون رو میچرخوندن. و معمولا برای پمبه هر روز صبح دخترها پمبه و دوکشون رو با خودشون میبردن و به دامن کوهی میرفتن و تا غروب کار میکردن. و قبل از تاریک شدن هوا به خونه گشتند. هر دختری که بیشتر پمبه ریست میکرد مصد بیشتری هم دریافت میکرد. در شهر کجاران مردی بود که هفت پسر داشت و اون رو هفتان اسمشو گذاشته بودن یه دخترم داشت که خیلی بهش علاقه من بود و این دختر نیز هر روز با بقیه دخترها برای پنبریسی به دامن کوه میرفت روزی از روزها اون دختر سی رو که باد به زمین انداخته بود و در سر راه خودش دید برداشت و در سبدش گذاشت و به کوه برد اون روز دخترها تا ظهر پنبه درست میکردن و در اون وقت صفرهٔ غذا رو پهن کردند دختر هفتان سیب رو از سبدش برداشت و اون رو گاز زد کرمی رو در سیب دید اون رو به آرونی برداشت و در سبد خودش قرار داد و به شوخی گفت بقیه روز رو به بخت و تاله این کرم پنبه میریسم و دخترها هم خندیدند. و بعد از خوردن غذا به پنبه درست کردن مشغول شدند. و اون دختر نزدیک غروب متوجه شد که دو برابر دیگران پنبه درست کرده که برای همه تعجب آور بود. در روزهای بعد اون دختر کم رو با خودش به کوه می برد و کنار دست خودش میذاشت و هر روز می‌دید که چند برابر روز قبل پنبه درست کرده و در هر حال از کم پذیرایی میکرد و هر روز سیبی رو جلوی اون قرار میداد مادر دختر که از مهارت و زبردستیش تعجب کرده بود کنشکاف شد و دختر بهش گفت که از روزی که کرم رو پیدا کرده به بخت و تاله او پنبه میریسه و دستهاش با چنان سرعتی کار میکنه که برای خودشم باور کردنی نیست مادر که به راز دخترش پی برده بود بهش گفت که از کرم که روز به روز بزرگتر میشه بیشتر پذیدائی کنه و بهترین و خوشخوراکترین سیبها رو در اختیارش قرار بده و اما بعد از پیدا شدن این کرد نه تنها اون دختر ماهر رو زبردست شده بود وقت از هر طرف سراغش اومده بود دست به هر کاری میزد موفق و پیروز میشد ثروت و به دنبالش قدرت به چنگ اونها افتاده بود و در این مدت کرم رو که به صورت عجیبی رشد میکرد و بزرگ میشد در یک صندوق بزرگ قرار دادند و هر روز انواع و اقسام سیبها رو براش می آوردند و کرم با ولع سیبها رو میخورد و بزرگ و بزرگتر میشد هفتان همچنان ثروتمند و با قدرت شده بود که از افراد زورمند و جنگجو رو دور خودش جمع می‌کرد و اونها رو به کمک هفت پسرش تعلیم نظامی میداد. و یک دفعه با حاکم کجاران درافتاد اون و سپاهش رو شکست داد و بر شهر تسلط پیدا کرد مردم اون رو به حکمرانی و فرماندگی انتخابش کردند و قسم و سوگند یاد کردند که ازش حمایت و پشتیبانی کنند هفتان بعد از این پیروزی دستور داد که قلعه مستحکمی بر قله کوهی که نزدیک کجارانه بسازند چند ماه بعد که این قلعه رو ساختن هفتان و یارانش به اونجا رفتند و کرم رو که در این مدت به صورت اجدهایی در اومده بود به قلعه بردن و حوض بزرگی از سنگ و ساروج در اونجا ساختن و اجدها رو در اون حوض قرار دادند دختر هفتان در این قلعه مأمور نگهبانی اجدها شد و اون هر روز صبح غذاهای خوشطمی رو که از شیر و برنج و شیرینی درست کرده بود برای می میآورد و اون اجده ها روز به روز بزرگتر و قویتر و نیرومنتر می شود. و همه یاران هفتان که در اون قلعه جمع شده بودن و در خدمت اجدها بودند بودن و لحظه ای از مراقبت و پرستاریش قافل نمی شدن و هفتان که صاحب اجدها بود چنان قدرتمند شده بود که به حکمرانی و فرماندهی یک قلعه و یک شهر بسنده نمیکرد و هر چند یک بار با فرماندهان اطرافش در میافتاد و با لشکرکشی های پشت سر هم شهرها و سرزمین های دیگر رو فات میکرد و هرچی رو که در این جنگ ها به رایگان دریافت میکرد به قلعه اشده ها می آورد و کم کم اون قلعه پر شده بود از گنج های زر و رسیم و هفتان در اون منطقه از همه ثروتمندتر شده بود و سربازان و جنگاوران زیادی زیر پرچم خودش به دست آورده بود و دیگه هیچ نیروی نمیتونست در مقابلش ایستادگی کنه اما در این روزگار اردشیر ساسانی که شهریار بخشهای بزرگی از ایران بود سپاهی فرستاد تا شهرهای اون حدود رو به تصرف در بیاره اما یاران اجده به سپاه اون حمله ور شدن و اده زیادی رو کشتن و بقیه رو تار و مار کردند و از هم پاشیدند. اردشیر متوجه شد که به هر ترتیب هفتان رو باید از بین ببره و برای این منظور سپاه بزرگتر دیگری رو برای سرکوبی یاران اجدها فرستاد و مأمورشون کرد که اجده ها رو نابود کنه و یارانش رو پراکنده کنه هفتان وقتی از نزدیک شدن سپاه اردشیر باخبر شد دستور داد که هیچ کس در قلعه نمونه و لشکریان در اطراف قلعه و در شکاف های پنهان بشن سپاه بزرگ اردشیر که از این نیرنگ بی خبر بودن همچنان پیش می اومدن و قلعه رو در محاصره میگرفتند اما لشگریان هفتان در مخفیگاه های خودشون منتظر میمونند تا هوا تاریک بشه و ناگهان بیرون بریزن و بر سپاه اردشیر حمله کنند و تا صبح ادهی رو کشتن و بقیه رو اسیر و فراری دادن اردشیر وقتی این خبر رو شنید بسیار ناراحت شد اما تسلیم و قمغسته نشد و دستور داد که سپاه بزرگتری را آماده جنگ کنند. و این بار خود سرداری و فرماندهی این سپاه را بر عهده گرفت هفتان و پسرانش که می دونستن اردشی دستبردار نیست این بار با تمام قوانی رو آماده جنگ شد و هر یک از هفتان رهبری سپاهی رو به دست گرفتند و هر سپاه در شهری اردو زدند و لشکرگاهی بر خودشون به وجود آوردند و خود هفتان نیز با عده‌ای از سربازانش در قلعه آماده جنگ بود و به محض اینکه اردشیر به نزدیکی قلعه رسید پسران هفتان هر یک از طرفی با سپاه خودشون به لشکریان اردشیر حمله بردند و سربازان مستقر در قلعه از کوه اومدن پایین و به سپاه مهاجم حمله ور شدن و عده زیادی رو به خاک و خون کشیدن و بقیه رو در محاصره گرفتند. وقتی این خبر به گوش مهرک نورسادان حکمران پارس که از افراد اردشیر بود رسید از فرمان اردشیر سرپیچی کرد و, و خودش رو پادشاه خواند و اردشیر که خودش رو از هر طرف شکست خورده و درمان دیده بود، در بیابان اسب میتاخت و که ناگهان متوجه شد از لشگریان خودش جدا شده، و تک و تنها مونده و بیان که منطقه رو بشناسه بی هدف راه خودش رو ادامه میداد، غروب آفتاب به روستای رسید. و در خونه ای رو زد که دو برادر که یکی برث نام داشت و دیگری برث آذر در اونجا منزل داشتن و زندگی میکردن. و از ترس اینکه اون رو بشناسن به اون دو برادر گفت که از سواران اردشیره امشب جایی در این خونه به من بدید تا فردا صبح برم و ببینم بر سر سپاه من چه اومده؟ برز و برزازر اون رو به خونه راه دادن و گفتند که ما هم با اردشیر و لشکریانش همدرد و همدل هستیم پیروان دهها در این حدود همه جا رو فرا گرفته بودن و بر همه تسلط یافته بودن و مردم رو گمراه کرده بودن دو برادر که مهمان ناخونده خودشون رو ساکت و غمگین دیده بودن برای اون قضای آماده کردند و ازش خواستن که چیزی بخوره اما اردشیر لب قضا نزد و برز و برز آزر اون رو دلداری دادن و گفتن که نباید گذاشت که غم و قصه ما رو بخواد از پا در بیاره و دل و روح ما رو سیاه کنه در این سرزمین هرگز ظلم و سیاه روزی دوام پیدا نمی کنه. پیروان اجده ها هم به زودی سرکوب و مقلوب می شن و دوباره لبها ها خندان میشه شه و دلها شادمان. عرد شیر و رو فراموش کرد دلش گرم شده بود به اونها و گفت که من اردشیرم و از لشکریانم جدا افتادم حالا باید نشست و یک رای حلی پیدا کرد که با پیروان اجده چه باید کرد؟ برز و برز آذر گفتن که ما حاضریم جان خودمون رو برای تو فدا کنیم اما برای نابودی یاران اجده باید نیرنگ و رو به کار ببریم کار این قوم با زور و لشکرکشی حل نمیشه اردشیر گفت چه رنگی باید بزنیم؟ و اون دو جوان هوشمند ایرانی گفتن زور و قدرت این گروه به وجود اجده بستگی داره. پس باید به ترتیب اجده ها رو از بین ببریم و برای این کار اگر صلاح بدونی ما دو برادر در خدمت تو به قلعه خواهیم رفت و خودمون رو از پیروان اجدها معرفی می‌کنیم. باید کاری کنیم که به ما اطمینان پیدا کنند و جز گروهی در بیایند که به اجدها غذا خوراک بده و قطعاً اگر به گداخته در گلو اجدها بریزیم این غذا قضا غذای آخرش میشه و بقیه کارها بعد از کشته شدن اجدها خود به خود درست میشه و خود او و برز و برزآزر لباس بازرگانان خراسانى رو تن کردند و با اون کاروان حرکت کردند به طرف قلعه اجدها و بعد از چندین روز به قلع نزدیک شدند و هفتان که خبردار شده بود بازرگانان خراسانی از راه دور میان تا به شیفتگان و پیروان اجده متصل متوصل بشن یکی از پسرانش رو با چندین اسب به استقبال اونها فرستاد و اردشیر در بین شور و شادی شیفتگان اجده وارد قلع شد و اون چیزی رو که با خودش آورده بود نصار و تقدیم هفتان و پسران و فرماندهان سپاه اونها کرد و همه اونها مجذوب شده بودند که هفتان بعد از سه روز از اردشیر پرسید که در برابر این همه هدایایی که براش آورده چه چیزی رو به او بده اردشیر گفت من چیزی نمیخوام چون انقدر مال و ثروت دارم که حد و اندازه نداره اما تنها آرزوم اینه که سه روز با دستهای خودم به اژدها غذا بدم هفتان و نگهبانان اژدها که شور و اشتیاق او رو دیدند رضایت دادند که سه روز غذا دادن اژدها رو به عهده اردشیر بذارن. اردشیر خوشحال شد و یکی از همراهانش رو معمور کرد که دور از چشم اژدها پرستان خودش رو به لشگریانش بفرسته و به سران سپاه بگه که چهار هزار نفر از جنگابران زبده رو به اطراف قلعه بفرسته تا بی سر و صدا در پشت تخت سنگ ها و شکاف های کوهستان های اطراف پنهان بشن و هر وقت که دود و آتیش رو از قلعه دیدن با تمام قدرت به طرف قلعه هجوم پیدا کنند. اردشیر بعد از فراهم کردن این مقدمات بعد از چند روز نگاهبانی و غذا دادن اجدها، به کمک برز و برز آزر که این مسئولیت رو به عهده گرفته بودند در روز اول و دوم بهترین خوشتمترین غذاها رو برای اجدها آماده میکردند و هر وقت که اژدها بانگ و فریادی از خودش در میآورد غذای ساخته و پرداخته رو در کامش میریختند اما در روز سوم به کمک برز و بعض‌آزر برز و چند نفر از همراهانش مقدار زیادی سرب رو که با خودشون آورده بودن روی آتش گداختن و آب کردن و موقعی که اجدهها به جنب و جوش می‌افتاد و فریاد میکرد که قضا میخورد سرب‌های گداخته رو تشت تشت توی دهانش می‌ریخت وقتی سرپای گداخته از دهان اجده گذشت و در وجودش تاثیر کرد فریادی از گلو اجده بیرون اومد که از صدای رد هم هلناکتر و وحشتناکتر بود و تمام قلعه به لرزه افتاد و یاران اجده ها از هر طرف می و ترسان و حراسان می بفهمند بفهمن که چه اتفاقی افتاده برز و برز آزر به دستور اردشیر در این وقت آتشی روشن کردند و سپاهیانی که در شگاف کوه‌ها پنهان شده بودند به طرف قلعه حمله ور شدند و اردشیر و برز و برز آزر و همراهان اون که در رون قلعه بودند شمشیر کشیدند و به جان یاران اجتاح افتادند و به زودی سپاهیان اردشیر از بیرون نیز به قلعه رسیدند و سربازان هفتان که گیج و مبهود شده بودند، حتی قدرت دفاع از خودشون رو نداشتن به خصوص وقتی که خبردار شدن اجده یعنی سرچشمه قدرت هفتان کشته شده هرکس راهی رو پیدا میکرد از قلعه بیرون بره و خودش رو جای امنی برسونه اون شب اردشیر و یارانش کار پیروان اجده رو یک سره کردند. هفتان و هفت پسرش کشته شدند و صبح روز بعد اردشیر فرمان داد که اون قلعه رو ویران کند و گروهی از پیروان اشتها که اسیر شده بودند حاکمیت اردشیر را قبول کردند به فرمان اردشیر شهر زیبا و بزرگی به جای آن قلعه و شهر کجاران که ویران شده بود ساختند و برز و برز آزر به پاس آن خدمات به فرمان اردشیر حکمرانی دو شهر رو در اون حدود به گرفتن از این داستان به این نتیجه میرسیم که اگر هر فردی بخواد روی توانمندی و نقاط قوت خودش تمرکز کنه و اونها رو تقویت و بهبود ببخشه و تمرکز خودش رو از روی دیگران و اشیا برد داره و اونها رو بلد و پررنگ بر خودش نکنه اتفاقهای خوب و فوقلادهی رو میتونه در روند زندگی بر خودش داشته باشه وابسته بودن به خود و تکه کردن به خود و توامندی های خود یکی از این ارکان هستش که آدمی میتونه به خودش در این مسیر زندگی تکه کنه و حس و حال خوبی رو برای خودش به ارمغان بیاره خیلی ممنونم از عزیزانی که تا انتهای این داستان همراه من بودن سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 سفر شاهزاده ها و شاهان با اسب تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای های دی و غول و پری رشادت‌های های, های قصهها همه, همه, همه. همه و همه و همه در کانال ترگرامی هزار افسان داستان های افسانهای صوتی ادساین مهران دوستی